اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرج <تصفيق> انك و, و بزرگان ملتنا قال وبزرگان از قوم او که سرکشی کردند گفتند ای شعيب قطعا تو و کسانی را که با تو ایمان آورده اند از شهر و دیار خیش بیرون خواهیم کرد یا اینکه به آین ما بازگردید شعیب گفت آیا بازگردیم اگرچه از آن کراحت داشته باشیم؟ قد افترینا علی الله کذبا ان عدنا فی ملتكم بعد از نجان الله من وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نعود فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَتِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت اگر ما به آین شما بازگردیم بعد از آنکه خدا ما را از آن نجات داد به تحقیق بر خدا دروغ بسته و شایسته ما نیست که به آن باز گردیم مگر آنکه الله پروردگار ما بخواهد زیرا علم و دانش پروردگار ما بر همه چیز احاطه دارد، ما بر خدا توکل کرده ایم، پروردگارا میان ما و قوم من به حق داوری کن که تو بهترین داورانی، وقال الملأ الذین كفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا إنكم اذا لخاسرون و اشراف و بزرگان از قوم او که کافر بودند گفتند اگر از شعید پیروی کنید قطعا شما زیانکار خواهید بود اخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين انگاه زلزله شدیدی آنها را فرا گرفت پس در خانهای خود از پا درآمدند الّذین كذبوا شعيبا كان لم يغنوا فيها الَّذِينَ هم آنان که شعیب را تقذیب کردند چنان نابود شدند که گویا هرگز در آن دیار و خانه ها نبودند و آنان که شعیب را تقذیب کردند خود زیانکار بودند تولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم, ونصحت لكم فكيف اسا على قوم كافرين آنگاه شعیب از آنان گرداند و گفت ای قوم من به راستی من پیام های پروردگارم را به شما رساندم و برای شما خیر خواهی و نصیحت نمودم پس چگونه بر گروه کافر افسوس بخورم و ما ارسلنا في قرية من نبی الا اخذنا اهلها و, لعلهم و ما در هیچ شهر و دیاری پیام بدی نفرستادیم مگر اینکه اهلش را برنج و سختی ها گرفتار ساختیم شاید تذرع و ذاری کنند ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس السبأ نظر الله وسر الله فأخذناهم لَا وهم لا يشعرون پس به جای ناخوشی و بدی خوشی و نیکی آوردیم تا اینکه افزون شدند و گفتند بیگمان به نیاکان ما نیز رنج و راحتی رسیده بود پس ناگهان آنها را در حالی که بی خبر و غافل بودند گرفتیم ولو ان اَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون و اگر اهل شهرها و آبادیها ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند قطعاً درهای برکات از آسمان و زمین را بر آنها می گشودیم آنها آیات و پیام بران ما را تکذیب کردند پس ما نیز آنها را به کیپر آنچه انجام میدادند فرو گرفتیم فمن هلارنیتیهم بأنا اهل این شهرها و آبادیها ایمن هستند از اینکه عذاب ما در شب هنگامی که خفته باشند سراغشان بیاید او امن اهل قرى ای یاتيهم وهم يلعبون آیا اهل این شهرها و آبادیها ایمن هستند از اینکه عذاب ما در روز هنگامی که سرگرم بازی هستند به سراغشان بیاید افأمنو مکر الله فلا مکر الله إلا القوم آیا آنها از مکر و گرفت خدا در امانند؟ در حالی که جزیان کاران کسی از مکر و گرفت خدا ایمن نمی شود؟ اَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا اَلَّوْ نَشَاءُ أَطَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطُبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ آیا برای آنان که زمین را پس از نابود کردن اهلش به ارث میبرند روشن نشده است که اگر بخواهیم آنها را نیز به کیفر گناهانشان هلاک می کنیم و بر دلهایشان مهر می نهیم آنگاه آنان نمی شنوند تلک القرآن قصو عليک ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين إن شهرها و ایست که برخی از اخبار آن را بر تو حکایت میکنیم و محققا پیامبرانشان دلایل و معجزات روشن برای آنان آوردند پس هرگز به آنچه از پیش تکذیب کرده بودند ایمان نیاوردند اینگونه خداوند بر دلهای کافران مهر می نهد و ما وجدنا من عهد و و در بیشترشان وفاي به عهد نیافتیم و به راستی بیشتر آنها را نافرمان یافتیم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئهِه فظلموا بها سپس بعد آنها موسی را با آیات و های خیش به سوی فرعون و اطراف یان او فرستادیم آنگاه آنها به آن آیات ستم کردند و کافر شدند پس بنگر عاقبت مفسدان چگونه بود وقال قال موسیٰ یا فرعون اینی رسول من رب العالمين. و گفت ای فرعون من فرستاده ای از سوی پروردگار جهانیان هستم حقیق علی قول على الله الا الحق قد جئتكم ببينه من ربكم فارسل معي بني اسرائيل سزا وارث که جستخان حق بر خداوند نگویم به تحقیق من دلیل و معجزه‌ای روشن از پروردگارتان برای شما آورده ام پس بنی اسرائیل را با من بفرست قال این کنت جئت بآيات فات فأتی بها این کنت من الصادقین فرعون گفت اگر معجز ای آورد ای آن را بیاور اگر از راستگویانی. فَأَلْقَاعَصَاهُ فَإِذَاهِيَ سُعْبَانٌ مُبِينٌ پس موسا عصای خود را انداخت ناگهان آن اجدهای آشکار شد و نزع یدهو فإذاهی بیضاء لناظرین و دست خود را از گریبان بیرون آورد پس ناگهان آن سفید و درخشان برای بینندگان بود قال من قوم فرعون انها لساحر علیم. اشراف و بزرگان از قوم فرعون گفتند به راستی این شخص جادوگری ماهر و داناست يريد أي يخرجك من أرضكم فماذا تمر میخواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند پس چه فرمان می دهیدقال أرج هو أخرس في المداائ حشر آنگاه به فرعون گفتند او و برادرش را بازداش کن و جمع آوری کنندگان را به همه شهرها بفرست یأتو بکل ساحر علیم تا همه ساحران دانا و ماهر را به نزد تو بیاورند و جاء السَّحَرَةُ السحرت فرعون قالوا، این لنا لأجرا اجران. لَنَا این لنا نحن الغالبين. فساهر نزد فرعون آمدند گفتند. آیا اگر ما پیروز شدیم پاداشی برای ما خواهد بود قال نعم و لمن المقربین فرعون گفت آری به تحقیق شما از مقربان خواهید بود موسی انکون نحن الملقین روز موعد فرارسی صاهران گفتند ای موسا یا نخوز تو اصای خود را بیافکن، یا ما ابزار خود را میافکنیم. قال القو فلم ما القو اعیون الناس و استرهبوهم و موسا گفت شما بیافکنید چون ابزار خود را افکندند چشمهای مردم را افسون کردند و آنها را ترساندند و سحر عظیمی پدید آوردند و اوحینا الى موسى ان عصاک عصاك، هی تلقف ما یعفی و ما به موسا وحی کردیم که عصای خود را بیفکن پس ناگهان ان عصا به صورت اجدهایی آنچه را که به دروغ ساخته بودند میبل اید فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون آنگاه حق آشکار و پیروز شد و آنچه آنها ساخته بودند و انجام میدادند باطل گشت فغلبو هنالک و انقلبو صاغری پس آنجا فرعون و فرعونیان همه مغلوب شدند و خار و زبون باز گشتند و القی السحرات ساجدین و صاهران به سجده افتادند قالوا آمنا برب العالمین گفتند به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم رب موسی و هارون. پروردگار موسی و هارون. قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لكم. این هذا ذال مکرم مکرتموه فی المدینه لی تخرجو منها اهلها فسوف تعلمون فرآن گفت آیا پیش از آن که به شما اجاز دهم به او ایمان آوردید قطعا این دسیس و است که در شهر اندیشیده تا اهلش را از آن بیرون کنید پس به زودی خواهید دانست لا اقطع عن من خلاف ثم لاصلبنكم البته دست‌هایتان و پاهایتان را به خلاف یکدیگر خواهم برید سپس همگی شما را بردار خواهم زد. الى ربنا گفتند پس از شهادت ما به سوی پروردگار من باز می گردیم.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 و تنها انتقام تو از ما به خاطر این است که ما به آیات پروردگارمان هنگامی که به سوی ما آمد ایمان آوردیم پروردگارا بر ما صبر و استقامت فروریز و ما را مسلمان بمیران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 و اشراف و بزرگان از قوم فرعون به او گفتند، آیا موسا و قوم را می تا در زمین فساد کنند و تو و معبودان اطراوا گذارند؟ فرعون گفت، به زودی پسرانشان را میکشیم و زنانشان را زنده نگه میداریم و بیگمان ما بر آنها چیره و مسلط هستیم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى گفت از خدا یاری بجویید و سبر و استقامت پیشه کنید همانا زمین از آن خداست به هرکس از بندگانش که بخواهد آن را به میراست میدهد و میبخشد و عاقبت نیک از آن پرهیزگاران است قالو اوهینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا قال ربكم عدوكم تعملون قوم موسی گفتند پیش از آن که به سوی ما بیایی آزار دیدیم و بعد از آن که نزد ما آمدی نیز آزار میبینیم موسی گفت امید است پروردگارتان دشمن شما را هلاک کند و شما را در زمین جانشین سازد پس بینگرد چگونه عمل می کنید و لقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقصیم من الثمرات لعلهم يذكرون و به راستی ما قوم و نزدیکان فرعون را به قهت سالی و کمبود میبه ها گرفتار کردیم شاید که آنان پند گیرند فَإِذَا فا جَاءَتْ هُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا هذه.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 پس هنگامی که نیکی و نعمت به آنها روی آورد گفتند این حق ماست و اگر بدی و رنجی به آنها می رسید به موسی و کسانی که با او بودند فال بد می زدند آگاه باشید همانا فال بدشان فقط به نزد خداست و به کیفر گناهانشان می باشد ولیکن بیشتر آنها نمیدانند. وقالو مهما تف بینیم من آيات انتن تحرا ن ب فما نحنله که بمؤمنیم و گفتند هرچرا که از نشانه و معجزه برای ما بیاوری تا ما را بدان جادو کنی ما به تو ایمان نمیآوریم. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمم والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين پس عذاب و بلاهای آشکار از قبیله طوفان و ملخ و شپش و قورباغه ها و خون را که هر کدا معجزه و نشانه روشن و جدا جدا بود بر آنها فرستادیم باز سرکشی کردند و گروهی گناهکار بودند ولما وقع علیهم الرجذ قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندك لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنَرْفُسَنَّ مَا عِكَ بَنِي و هنگامی که عذاب بر آنها واقع میشد میگفتند ای موسی پروردگارت را برای ما بخوان به آنچه به تو وحی و عهد کرده است اگر این عذاب را از ما برطرف کنی قطعا به تو ایمان میآوریم و بنی اسرائیل را با تو خواهیم فرستاد فلم ما عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم پس هنگامی که از را تا مدت معینی که آنان به آن می از آنها برطرف کردیم، ناگهان پیمان شکنی کردند. فَانْتَقَنَّا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَبُوا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ پس از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق کردیم زیرا که آیات ما را تقذیب کردند و از آن غافل بودند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 مرنا که فرعون و و شرق و غرب زمین را که در آن برکت داده بودیم به گروهی که ناتوان شمرده می شدند به میراست دادیم و بعد نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل به خاطر صبر و استقامتی که کردن تحقق یافت و آنچه فرعون و قوم او میساختند ساختند و آنچه را که برمی افراشتند در هم کوبیدیم وجاوزنا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 و ما بنی اسرائیل را از دریا گذراندیم آنگاه بر گروهی گذشتند که اطراف بطهای خود با توازع و فروتنی گرد آمده بودند گفتند ای موسا برای ما نیز معبودی قرار ده گونه که آنها معبودهایی دارند موسی گفت حقا شما گروهی نادان و جاهل هستید این اولائ متبرر ما هم فيه وباطل ما يعملون بیگمان اینها عاقبت کارشان نابودی است و آن چه انجام میدادند نیز باطل است قال الا غير الله ابغيكم الهًا وهو فضلكم على العالمين سپس گفت آیا غیر از خداوند معبودی برای شما بجویم در حالی که او شما را بر جهانیان برتری داد وا اذ ان جئناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم و فی و به یادآورید زمانی را که شما را از فرعون و فرعونیان نجات دادیم آنها پیوسته شما را به بدترین صورت شکنج می دادند پسرانتان را می و زنانتان را زنده نگه می داشتند و در این برای شما آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود و وعدنا موسی ثلاثین لیلتا و اتمناها بی عشرین فتممیقات ربیه وقال قال موسى لأخیه هارون اخلفنی فی قومی واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین و با موسى سی شب وعد نهادیم و آن را با ده شب دیگر کامل کردیم پس می آده پروردگارش با او چهل شب تمام شد و موسى به برادرش هارون گفت جانشین من در میان قوم من باش و آنها را اصلاح کن و از راه مفسدان پیربی نکن ولما جاء موسی لیقاتنا و ربه قال رب أرني انظر الیک قال تراني ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا لَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ و هنگامی که موسی به میاد ما آمد و پروردگارش با او سخن گفت عرض کرد پروردگارا خودت را به من نشان بده تا به تو بنگرم فرمود در دنیا هرگز مرا نخواهی دید ولیکن به کوه بنگر پس اگر در جایش ثابت ماند تو نیز مرا خواهی دید پس چون پروردگارش بر آن کوه تجلی کرد آن را متلاشی ساخت و موسی بیهوش افتاد پس هنگامی که به هوش آمد عرض کرد تو پاک و منزهی من به سوی تو بازگشتم و توبه کردم و من حسین مؤمنانم قال <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <خداوند> مِنَ فرمود ای <أي> موسی من تو را با و با سخن خود بر مردم برتری دادم و برگزیدم پس آنچه را به تو دادم بگیر و از سپاس گذاران باش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 و برای او در لوح ها هر گونه پند و تفصیل و بیان هر چیز را نوشتیم و به موسا فرمودیم پس آن را با نیرومندی و جدیت بگیر و به قومت فرمانده تا به نیکوترین آن عمل کنند و به زودی جایگاه و سرای نافرمانان را به شما نشان خواهم داد تَأَصْرِفُ عن آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرَّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلك بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين بزودی کسانی را که به ناحق در روی زمین تکبر می‌ورزند از آیات خود باز می‌دارم و اگر هر ای را ببینند به آن ایمان نمی‌آورند و اگر راه هدایت را ببینند آن را در پیش نمی‌گیرند و اگر راه گمراهی را ببینند آن را برمی گذینند. این بدان خاطر است که آیات ما را تقزید کردند و از آن غافل بودند وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ هل يجزون الا ما كانوا و کسانی که آیات ما و دیدار آخرت را تقزیب کردند اعمالشان تباه و نابود شد آیا جز آنچه را عمل میکردند کردند داده میشوند؟ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِّهِمْ عَجْلاً جَتَّدَ لَهُ خُوَاعٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِي هُمْ سَبِيلًا إِتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ضَالِّينَ و قوم موسی بعد از رفتن او به میادگاه از زیبرهایشان ای ساختند جسد بیجانی که صدای گوساله داشت آیا نمیدیدند که با آنها سخن می‌گوید و به راهی هدایتشان نمیکند؟ آن را به خدایی گرفتند و ستمکار بودند و سقط في ايديهم ورؤوا انهم قد ضلوا قالوا, قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين شدند و دیدند که به راستی گمراه شده گفتند اگر پروردگار من به ما راه نکند و ما را نیامرزد زد از یانکاران خواهیم بود ولما لما رجع موسیٰ الى قومهی غبان اسفا قال بئس ما من بعدی اَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْذَاءِ فلا تشمت بالاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمین. و چون موسی خشمگین و اندوهناک به سوی قومش بازگشت گفت پس از من چه بد جانشینانی برایم بودید آیا از حکم پروردگارتان پیشی گرفتید و لوحا را انداخت پسر برادر خود را گرفت و به سوی خود کشید هارون گفت ای پسر مادرم به راستی این قوم مرا در تنگنا قرار دادند و ناتوان کردند و نزدیک بود مرا بکشند پس با من کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وأنت ارحم الراحمین موسی گفت پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خویش داخل کن و تو مهربانترین مهربانان هستی ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجز المفترين براستی کسانی که گوساله را به خدایی گرفتند به زودی خشمی از پروردگارشان و ذلۃ و خاری در زندگی دنیا به آنها میرسد و این چنین دروغ پردازان را کی فرمیدهیم و الذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و ربك من بعدها لغفور و کسانی که مرتکب کارهای بد شدند سپس بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند همانا پروردگار تو پس از آن مسلما آمرزنده مهربان است و لما سکت عن الغضب اخذ و فی نسختها هدن و رحمت للذین هم لربهم یرهبون و چون خشم از خاطر موسا فرونش است را برگرفت و در نوشته های آن هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگارشان می ترسند. وَاختَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّایِ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 انت ولینا فغفر لنا ورحمنا و انت خیر الغافرین و موسا از قومش هفتاد مرد را برای میعاد ما برگزید پس هنگامی که زلزل آنها را فرا گرفت و همه مردند موسا گفت پروردگارا اگر میخواستی پیش از این آنها و مرا هلاک میکردی آیا ما را به نادانان انجام داده اند هلاک می کنی؟ این جز آزمایش تو چیزی نیست هر که را بخواهی به وسیله آن گمراه میسازی و هر که را بخواهی هدایت میکنی تو یاور و کار مایی پس ما را بیامرد و بر ما رحم کن و تو بهترین آمر زندگانی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 فسا اکتب ها للذین یتقون و یعتون الزکاة والذین هم یؤمنون و برای ما در این دنیا و در سرای آخرت نیکی مقرر فرما ما به سوی تو بازگشتیم خداوند فرمود عذابم را به هر کس که بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته است پس آن را برای کسانی که تقوا پیشه می کنند و زکات میدهند و کسانی که به آیات ما ایمان میآورند مقرر خواهم داشت الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عندهم الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التوراة وَالْإِنْجِيلِ يأمرهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات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 فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه هم المفلحون. آنان که از این رسول خدا پیامبر امی پیروی کنند که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است نوشته می آبند آنها را به کارهای خوب و پسندیده فرمان می دهد و از زشتی و کارهای ناپسند بازشان می دارد و پاکیزه ها را برایشان حلال می و پلیدی ها بر آنان حرام می کند و بارهای سنگین و قید و زنجیر هایی را که بر آنها بود از دوش آنها بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و او را گرامی داشتند و او را یاری دادند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند آنانند که رستگارند قول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فأمنوا بالله ورسوله نبیل امیی لذی یؤمن بالله و کلماته و التبعوه لعلكم تهتدون بگو ای مردم من فرستادی خدا به سوی همه شما هستم آن خدایی که فرمان روائی آسمانها و زمین از آن اوست معبود راستینی جز او نیست زنده می کند و می میراند. پس به خدا و فرستاد اش آن پیامبر امی که به خدا و کلماتش ایمان دارد ایمان بیاورید و از او پیروی کنید باشد که هدایت شوید و من قوم موسى امت یهدون بالحق و یعدلون و از قوم موسی گروهی هستند که مردم را به سوی حق هدایت می و به آن حق ادالت و حکم می کنند وَقَبْطَعْنَاهُمُ اثنَتَي عَشْرَةَ أَثْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرِ فَانْبَجَثَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا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 و انفسهم یظلمون و آنها را به دوازده قبیله گروه گروه تقسیم کردیم و به موسا آنگاه که قومش از او آب خواستند وحی کردیم که اصایت را بر سنگ بزن ناگهان دوازده چشمه از آن بیرون جزد هر گروهی آبش خور خود را دانست. و ابر را بر سر آنها سایبان ساختیم و بر آنها من و سلوا فرستادیم و به آنان گفتیم: از آنچه از پاکیزه ها روزیتان کرده این بخورید آنها با نافرمانیشان بر ما ستم نکردند بلکه بر خویشن ستم می نمودند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 و به یاد آورید هنگامی را که به آنها گفته شد در این شهر ساکن شوید و از هر جا که خواستید از نعمتهای آن بخورید و بگویید گناهان ما را بریز و با خشوع و فروتنی به دروازه درایید گناهان شما را می بخشم و نیکوکاران را پاداش افزونتری خواهیم داد فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوْ يَظْلِمُونَ آنگاه ستمگران آنها این سخن را که به آنها گفته شده بود تغییر دادند و به جای آن کلمه مسخر آمیزی گفتند پس به کیفر ستمی که میکردند عذابی از آسمان بر آنها نازل کردیم.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 و از آنها در باری اهل قریه ای که نزدیک دریای سرخ بود بپرس هنگامی که آنها در روز به تجاوز میکردند چون ماهیان آنها در روز شنبهشان که روز تعطیل و عبادت بود روی آب آشکار میشدند. و روزی که تعظیمشان به نمی کردند به سراغ آنها نمی آمدند، این چونین آنها را به کیفر آنچه نافرمانی می کردند آزمایش کردیم. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا إِلَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ و به یاد هنگامی را که گروهی از آنها به گروه دیگر گفتند چرا گروهی را اندرز می دهید که خداوند آنها را هلاک یا به عذاب شدیدی گرفتارشان خواهد کرد گفتند تا ما را نزد پروردگارتان عذری باشد و شاید آنها تقبا پیشه کنند فلم ما نسوا ما ذكروا به ان جئنا الذين ينهون عن السوء ان السوء واخذنا الذين ظلموا وَأَخَدْنَ الَّذِينَ ظلموا بعذاب بَعِیثٍ بما كانوا يَفْسُقُونَ پس چون آنچه را که به آن پند داده شدند فراموش کردند کسانی را که از بدی نهیمی کردند نجات دادیم و کسانی را که ستم کردند به کیفر آنکه نافرمان بودند به عذابی سخت گرفتار ساختیم فلما نهو عنه قلنا لهم كونوا پس چون از ترک آنچه از آن نهی شده بودند سرپیچی کردند به آنها گفتیم به صورت بوزینهای خار و مترود درایید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 و به یادآور آور، هنگامی که پروردگارت اعلام کرد، مسلما تا روز قیامت کسی را بر آنها مسلط خواهد کرد، که همواره به آنها عذاب سختی بچشاند، بیگمان پروردگارت زود کیفر است، همان او آمرزنده مهربان است. و قطعناهم فی الارض اممه، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسیئات لعلهم یرجعون و آنها را در زمین به صورت گروه گروه پراکنده ساختیم گروهی از آنها صالح و گروهی غیر صالح وانها را ها و بدی ها آزمودیم شاید توبه کرده به راه راست باز کردند فخلف من بعدهم خلف و الكتاب يأخذون عرض هذا و ويقولون سیغفر لنا ياخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خیر لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تعقلون. پس از آنها گروهی غیر صالح جانشین آنها شدند که کتاب تورات را به ارث بردند و این دنیای پست را میگیرند و میگویند به زودی آمرزیده خواهیم شد و اگر متاع دیگری همانند آن برایشان بیاید آن را نیز می‌گیرند آیا پیمان کتاب خدا از آنها گرفته نشده است که بر خدا جز حق نگویند و آنچه در آن چه است خانده اند و سرای آخرت برای کسانی که تقوا پیشه کنند بهتر است آیا نمی‌اندیشید والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين. و کسانی که به کتاب خدا تمسک می‌جویند و نماز را بر پا دارند پاداش بزرگی خواهند داشت به راستی ما پاداش درست کاران را زایع نخواهیم کرد وَإِذne قَنَّ الجَبَلَ فَوْقَهُم كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنّوا وَظَنّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذكُرُوا و اذکرو ما فیه لعن لکم تتقون و یاد آورید هنگامی که کوه را همچون سایبانی بر فرازشان برفراشتیم و پنداشتند که بر آنان فرود می آید و در چنین حالت از آنها عهد گرفتیم و گفتیم آنچرا که به شما دادیم این با نیرو و جدیت بگیرید و آنچه را که در آن است یاد کنید تا پرهیزگار شوید. و اذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم أليس بربكم قالوا بلا شهدنا ان تقولو عن و هنگامی که پروردگارت از پشتهای فرزندان آدم زرریه آنها را برگرفت و ایشان را بر خودشان گواه ساخت و فرمود آیا من پروردگار شما نیستم؟ گفتند آری گواهی می دهیم و این گواهی به دین خاطر بود که مبادا در روز قیامت بگویید ما از این بیخبر بودیم او تقول انما اشراک آباؤنا من قبل و کنا بعدیم بما فعل یا مبادا بگویید پدران از پیش شرک آورده بودند و ما هم فرزندانی بعد از آنها بودیم آیا ما را به آنچه باطل انجام دادند نابود میکنی؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. و این آیات را به تفصیل بیان می کنیم و شاید به سوی حق باز کردند. وَتَلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَنَسَلَخَ مِنْهَا فَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ و ای پیام بر آنها بخان سرگذشته کسی را که آیات خود را به او دادیم آنگاه از آن جدا و آری گشت پس شیطان در پی او افتاد و از گمراهان شد ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس أو تتركه يلهس ذلک مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون و اگر میخواستیم او را با آن آیات بالا میبردیم ولی او به سوی زمین و دنیا مایل شد و به پستی گرایید و از هوای خیش پیروی کرد پس مثل او چون مسئله سگ‌ها است که اگر به او حمله کنی زبان از دهان بیرون میآورد و اگر او را به حال خود واگذاری باز هم زبانش را از دهان بیرون میآورد. این مسئله گروهی است که آیات ما را تکذیب کرده‌اند پس این داستانها را بر آنها بازگو کن شاید بیندیشند زد مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون چه بد مصلی دارند گروهی که آیات ما را تکذیب کردند و آنها بر خیشتان ستم می‌کردند. مَن يَهْدِ اللَّهُ فهو و هم هر کس را که خدا هدایت کند پس او هدایت یافته واقعی است و هر کس را که گمراه سازد پس انها زیان کاران واقعی هستند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 اولائی که بل هم اضل اولائی هم الغافلون به تحقیق گروه بسیاری از جن و انس را برای جهنم آفرید این آنها دلهایی دارند که با آن نمی فهمند و چشمانی دارند که با آن نمی بینند و هایی دارند که با آن نمیشنوند آنان مانند چهار پایانند بلکه اینان گمراه ترند اینان همان غافلانند و لله الاسماء الحسن فدعوه بها و ذر الذین يلحدون فی سیجزون ما كانوا یعملون و برای خدا نام های نیک است پس به آن نام ها او را بخانید و کسانی را که در نام هایش تحریف می کنند رها کنید به زودی آنها کیفر آنچه را می کردند خواهند داد و من من خلقنا امت یهدون بالحق و به و از میان آنان که آفرید گروهی هستند که به حق هدایت می نمایند و به آن حکم و عدالت می کنند. والَّذنَ كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حثُ لا يعلمون و كسانی که آیات ما را تغذب کردند به تدریج از جایی که نمیدانند گرفتارشان خواهیم کرد وَمللَهم إ كديمة و به آنها مهلت میدهم بیگمان تدبیر من متین است اولم ما بصاحبهم من جنه هو الا آیا فکر نکرده اند که هم نشین آنها هیچ گونه نشانی از دیوانگی ندارد او تنها بیمدهنده آشکار است اولم ینظو فی ملكوت السماوات والارض و ما خلق الله من شيء و انعسا ان يكون قد اقترب اجلهم و حدیث بعده یؤمنون آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه خدا آفریده است نمی نگرند؟ و آیا فکر نمی کنند شاید عجلشان نزدیک شده باشد؟ پس بعد از این قرآن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ یبلن الله هر کس را که خدا گمراه کند پس هدایت کننده ای برایش نیست و آنها را در سرکشی و تغیانشان سرگردان رها می کند يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتها یسألونک که انک حفی عنها قل اینما علمها عند الله ما اكثر الناس لا يعلمون ای پیامبر در قیامت از تو سؤال می کنند که باقی بگو مسلماً علم آن فقط نزد پروردگار من است و جز او کسی وقتش را آشکار نسازد دانستن آن در آسمانها و زمین سنگین و پوشیده است و جز به طور ناگهانی به سوی شما نمی آید چنان از تو سؤال می کنند که گویی تو از وقوع آن خبرداری بگو علم آن فقط نزد خداست ولی بیشتر مردم نمی دانند. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضررا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لست اكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير بگو من مالک سود و زیان خیشتن نیستم مگر آنچه را خدا بخواهد و اگر غیب میدانستم خیر و سود بسیاری برای خود فراهم می ساختم و هیچ بدی و زیانی به من نمی رسید من کسی نیستم جز بیم دهنده و بشارت دهندهای برای گروهی که ایمان دارند هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فَلَمَّا أَثْقَلَتِ الدَّعْوٰى وَاللّٰهُ رَبُّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ اوست که شما را از یک تن آفرید و همسرش را نیز از خودش پدید آورد تا در کنار او آرام می‌گیرد پس چون مرد با همسرش آمیزش کرد حملی سبک برداشت پس مدتی با آن حمل گذرانید و چون سنگین شد هر دو زن و شوهر به درگاه الله پروردگارشان دعا کردند که اگر فرزندی تندرست به ما بدهی مسلما از سپاس گزاران خواهیم بود فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ پس چون خداوند فرزندی تندروست و شایسته بی آن داد برای او در آنچه به آنان داده بود شریکانی قرار دادند پس خداوند برتر از آنچه شریک او قرار می دهند. آیا چیزی را شریک می گیرند که چیزی را نمی آفریند و خودشان مخلوقند؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون فنيتوانند آنها را یاری کنند و نه خودشان را یاری میدهند و این تدعوهم به عليكم ام انتم صامتون؟ و اگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید از شما پیردینه می کنند برای شما یکسان است خواه آنها را دعوت کنید و یا خاموش باشید ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين بیکمان آنهای را که غیر از الله می خانید بندگانی همچون شما هستند پس آنها را بخوانید اگر راست میگویید پس باید دعای شما را اجابت کنند الہُم ارجُل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعیون یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قلدعو شرکاءکم ثم مکیدون آیا پاهایی دارند که با آن راه بروند؟ یا دستهایی دارند که با آن چیزی را بگیرند؟ یا چشمانی دارند که با آن ببینند؟ یا گوشهایی دارند که با آن بشنوند؟ ای پیامبر به مشرکین بگو شریکانتان را بخوانید، سپس بر ضد من تدبیر و نیرنگ کنید و مرا مهلت ندهید این مولای الله الذی نزل الكتاب، و هو يتولى همانا یاور و سرپرست من خداوندی است که این کتاب را نازل کرده و او یاور و کار ساز صالحان است وَالَّذِينَ تدعون من دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ و کسانی را که به جای او میخانید نمیتوانند شما را یاری کنند و نه خودشان را یاری دهند وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعون وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون واگر آنها را به سوی هدایت دعوت کنید سخنانتان را نمی و آنان را میبینی که به تو نگاه میکنند در حالی که نمی بینند خود العفو و بالعرف و عن الجاهلين ای پیامبر گذشت را پیش کن و به نیکی فرمانده و از نادانان روی بگردان و اما ینزغنک من الشیطان ندرون فاستعید بالله اینه سمیع علیم و اگر از سوی شیطان ای به تو رسد به خدا پناه ببر بیگمان او شنوای داناست این الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا تذكروا فاذا هم مبصرون همانا کسانی که پرهیزگاری میکنند چون وسوسه ای از شیطان به آنها برسد به یاد خدا میافتند پس ناگهان بینا میگردند و اخوانهم فی الغی ثم لا و برادرانشان از شیطان آنان را به گمراهی میکشانند، سپس در این زمینه کوتاهی نمی‌کنند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 هذا بطائر من ربكم لقوم چون آیه و معجزه‌ای برای آنان نیاوری گویند چرا خودت آنان را برنگزیدی بگو من فقط از چیزی پیروی میکنم که از پروردگارم به من وحی شود این قرآن حجتها و بینایی از طرف پروردگارتان و مایه هدایت و رحمت است برای گروهی که ایمان می آورند و اذا قرآن قرآن و ترحمون. و چون قرآن خوانده شود پس به آن گوش فرا دهید و خاموش باشید مشمور رحمت شوید. و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و ودون و دون الجهر من القول بالغدو والآصال و تكن من الغافلین و پروردگارت را در دل خود با تزرع و بیم نبا صدای بلند در صبحگاهان و شامگاهان یاد کن و از غافلان مباش اینن الذین عند ربک لا یستكبرون عن عبادته و یسبحون و یسبحونه یسجدون همانا کسانی که در نزد پروردگار تو هستند از عبادتش تکبر نمی برزند و او را به پاکی یاد می کنند و برایش سجد می کنند اعوذ بالله من الشیطان الرجیم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 و الله کنتم از تو درباره انفال سؤال میکنند بگو انفال از آن خدا و پیام است پس از خدا بترسید و میانی خودتان را اصلاح کنید و خدا و پیام بر را اطاعت کنید اگر ایمان دارید. اینما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذ تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا و تلیت علیهم آیاته زادتهم زَادَتْهُمْ اِیمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مؤمنان تنها کسانی هستند که چون نام خدا برده شود دلهایشان ترسان گردد و چون آیات او بر آنها خوانده شود ایمانشان افزون گردد و بر پروردگارشان توکل میکنند. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِنْمَا رزقناهم يُنفِقُونَ کسانی که نماز را برپا می دارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند که هم المؤمنون حقا لهم عند ربهم و و رزقون کریم. اینان مؤمنان حقیقی هستند برای آنان درجاتی پیاپی نزد پروردگارشان است و همچنین آمرزش و روزی فراوان و نیکو در بهشت است کما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريق من المؤمنين همان گونه که پروردگارت تو را به حق از خانعت بیرون آورد در حالی که گروهی از مؤمنان ناخشنود بودند یساقون الی الموت وهم ينظرون. آنها پس از آنکه حقیقت آشکار شد در باری حق با و مجادله کنند گویی به سوی مرگ رانده میشوند و خود می نگرند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 و به یاد آورید هنگامی را که خداوند به شما وعده داد که یکی از دو گروه نصیب شما خواهد بود و شما دوست می‌داشتید که کاروان غیر جنگی برای شما باشد و خداوند می‌خواست با سخنان خیش حق را پایدار کند و ریشه کافران را قطع کند لیو حق الحق و الباطل ولو کره المجرمون تا حق را ثابت و باطل را از میان بردارد اگر چه کاران ناخشنود باشند از تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممیدکم بی الف من الملائکت مردفین. به یاد آورید که از پروردگارتان یاری میخواستید پس او خواسته شما را پذیرفت و فرمود من شما را با یک هزار از فرشتگان که پیاپی پی فرود می‌آیند یاری می‌کنم و ما جعله الله إلا بشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عند الله الله و خداوند این یاری و مدد را تنها برای شادی و اطمینان قلب شما قرار داد و گرنه پیروزی جز از طرف خدا نیست به راستی خداوند پیروزمند و حکیم است. اَذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ و لیربط على قلوبكم و يثبت به الاقدام و به یاد آورید هنگامی را که خواب سب آرامشی از سوی او بود شما را فرا گرفت و از آسمان آبی بر شما فرو فرستاد تا شما را با آن پاک کند و پلیدی شیطان را از شما دور سازد و دلهای شما را مخکم بدارد فَقَامْهَایِ تَنْ رَبَاءً اُصْتْفَارْ كُنَدْ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُونَ فَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانُ و به یاد آور هنگامی که پروردگارت به فرشتگان وعی کرد من با شما هستم پس کسانی را که ایمان آوردند ثابت قدم دارید به زودی در دل کسانی که کافر شدند ترس و حراس میفکنم پس بر فراز گردنها بزنید و همه انگشتانشان را بزنید ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله ورسوله فان الله شديد العقاب این به آن است که آنها با خدا و رسولش مخالفت کرده و هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند پس خداوند سخت کیفر است ان ای کافران شما این عذاب و مجازات در دنیا را بچشید و بدانید که برای کافران در قیامت عذاب آتش است یا ایوها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ای کسانی که ایمان آورده اید. چون با انبوه کافران روبرو شوید پس به آنها پشت نکنید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 فقد باء بغضب من الله و جهنم و و هر کس در آن روز به آنها پشت کند مگر آنکه برای حمله دوباره یا به قصد پیوستن به گروهی دیگر باشد به خشم خدا بازگشته است و جایگاه او جهنم است و چه بد جایگاهی است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 پس شما آنها را نکشتید، بلکه خداوند آنها را کشت و هنگامی که به سوی آنها خاک و سنگ انداختی، تو نینداختی، بلکه خدا انداخت تا مؤمنان را به آزمایشینی کو از جانب خود بیازمایت، بیگمان خداوند شنوای داناست ذلكم و الله موهن و كيد این واقعه چونین بود که دیدید و بدانید که همانا خداوند سوز کننده مکر کافران است این تستفتحو فقد جاءکم الفتح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 پس بیگمان گمان و پیروزی برای تان آمد و اگر دست بردارید برای شما بهتر است و اگر باز گردید ما هم باز خواهیم گشت و گروه شما هرچند زیاد باشد شما را بینیاز نخواهد کرد زیرا که خداوند با مؤمنان است یا ایوها الذين آمنون اطیع الله ورسوله و لا تولوا عنه وانتم تسمعون ای کسانی که ایمان آورده اید خدا و رسولش را اطاعت کنید و از او روی نگردانید در حالی که سخن او را میشنوید ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون وما نند نباشید نباشيدت كه گفتند شنیدیم حال آنکه آنان نمی شنیدند ان شر الدواب عند الله الذين لا همانا بدترین جنبندگان نزد خدا افراد کر و لالی هستند که نمی اندیشند ولو علم الله فيهم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون و اگر خداوند خیلی در آنها میدانست قطعاً به آنان میشنواند و اگر هم با این حال به آنان میشنواند باز روی میگرداندند و اعراض و سرپیچی میکردند. یا یها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییكم و ان الله یحول بین المرء وقلبه و, و اليه تحشرون ای کسانی که ایمان آورده اید دعوت خدا و پیام بر او را اجابت کنید هنگامی که شما را به سوی چیزی فرا میخواند که شما را حیات و زندگی می و بدانید که خداوند میان شخص و قلب او هایل می شود و بدانید که به سوی او محشور خواهید شد واتقوا اتقو لا تصیبنن الذین ظلموا منکم و اعلمو ان الله شدید العقاب و از فتنه ای بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمیرسد، بلکه همه را فرا میگیرد و بدانید که خداوند سخت کیفره است واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون, تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم و رزقكم من الطیبات لعلكم تشکرون و به یاد آورید زمانی را که شما در روی زمین اندک و ناتوان بودید میترسیدید که مردم شما را برو پس بس خداوند شما را پناه داد و با یاری خود شما را تأیید و تقویت کرد و از چیزهای پاکیز به شما روزی بخشید شاید شما سپاسگزار باشید یا ایوها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول و وتخونوا و وأنتم تعلمون ای کسانی که ایمان آورده اید به خدا و پیامبر او خیانت نکنید و نیز در های خود در حالی که می دانید خیانت نبرزید و اعلمو انما اموالکم و اولادکم الله عنده اجر و بدانید که اموال شما و اولاد شما وسیله آزمایش است و همانا خداوند است که پاداش بزرگ نزد اوست یا ای ست الله يجعل لكم فرقان ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم ای کسانی که ایمان آورده اید اگر از خدا بترسید برای شما راه نجات قرار میدهد و گناهانتان را میپوشاند و شما را میآمرزد و خداوند صاحب فضل و بخشش بزرگ است و این منکر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك و منكرون الله والله خير الماكرين و به یاد آور آنگاه که کافران در باری تو نقشه میکشیدند کشیدند که تو را به زندان بیفکنند یا تو را بکشند و یا از مکه بیرونت کنند آنها چاره و مکه میاندیشیدند و خدا هم تدبیر می کرد و خداوند بهترین تدبیر کنندگان است وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْنَ شَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا اِنْ هَذَا اِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ و چون آیات ما برانها خانده شود گویند همانا شنیدیم اگر ما هم بخواهیم مانند آن را میگوییم اینها جز افسانه های پیشین یا نیست قائل قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا فامطر علينا من او و به یاد آورانگاه که گفتند پروردگارا اگر این قرآن حق است و از جانب توست پس از آسمان سنگی برما بباران یا عذاب دردناکی ما بفرست وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ الله مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ و تاتو ای پیامبر در میان آنها هستی خداوند آنها را عذاب نخواهد کرد و نیز تا زمانی که استغفار می کنند خداوند عذابشان نمی‌کند و ما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولیاءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون و چرا خداوند آنها را عذاب نکند حال آنکه آنان مردم را از مسجد الحرام باز می‌دارند در حالی که آنان متولیان و سرپرست آن نیستند متولی و سرپرست آن تنها پرهیزگارانند ولی بیشترشان نمیدانند. وما كان کان صلاتهم عند البيت الا مكاء و تصديه فذوق العذاب بما كنتم تكفرون نمازشان نزد خانی کعبه چیزی جز سود کشیدن و کف زدن نبود پس به کیفر کفرتان عذاب را بچشید این الذين كفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبيل الله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 اموالشان را برای باز داشتن مردم از راه خدا خرج می کنند. پس به زودی همه را خرج می کنند. آنگاه مایه حسرت و پشیمانی برانان خواهد بود سپس شکست می خورند و سرانجام کسانی که کافر شدند به سوی آتش جهنم رانده می شوند. لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيْفَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيْفَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمْ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تا خداوند پلید را از پاک جدا سازد و پلیدان را روی هم بگذارد آنگاه همگی را متراکم سازد و سپس یک جا در دوزخ قرار دهد اینها همان زیانکاران واقعی هستند قل للذین کفروا این ینتهو یغفر ما قد سلف و فقد ای پیامبر به کسانی که کافر شدند بگو اگر از کفر و دشمنی دست فردارند گذشته هایشان آمرزیده می شود و اگر به همان اعمال خود باز گردند پس بیگمان سنت و روش خداوند دربارهٔ پیشینیان گذشته است وقاتلوهم حتی لا تكون فتنت و يكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصر و با آنها پیکار کنید تا فتنه شرک ریشه شود و پرستش بدین همه از آن خدا باشد پس اگر آنها از شرک و آزار و اذیت از دست بردارند خداوند به آن چه می‌کنند بیناست و این تولوا فعلموا ان الله مولاكم نعم المولى و, و اگر سرپیچی و روی گردانی کنند پس بدانید که خداوند سرپرست و مولای شماست چه نیگوسرپاست و چه یاوریست